دوستان آیا تا به حال به این موضوع توجه کردید که چرا اغلب توانه ما مسیحیان کاهش پیدا میکنه؟ آیا تا به حال این احساس رو داشتید که براتون ممکن نیست که خاست خدا رو انجام بدین؟ معلم ما امروز به ما خواهد گفت که ما فرصت دسترسی به هر چیزی رو که خاست خدا برای زندگی روحانی ماست داریم. فقط مشکل اینجاست که گاهی وقتا ما به نقطه اشتباهی نگاه میکنیم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچاک کتاب مقدس خوش اومدین. در این کلاس ما بررسی نامه پولس رسول به قلاتیان رو به پایان میبریم و شروع به بررسی افسوسیان میکنیم. خوشحالیم از اینکه امروز به ما ملحق شدید. ما اطمینان داریم و میدونیم که شما حقایق کلام خدا رو یاد میگیرید و اون حقایق زندگی شما رو برکت میده. حالا با هم به درس امروز معلممون گوش می‌کنیم. پولس رسول رساله افسوسیان رو اینطور شروع میکنه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس میگوییم زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهرمند ساخته است در چند جلسه بعدی قصد دارم که به بررسی نامی پولس به افسوسیان بپردازم اما قبل از اینکه بررسی کتاب افسوسیان رو شروع کنیم میخوام توضیحات پایانی خودم رو در مورد نامه پولس به گلاتیان با شما در میون بذارم. وقتی که این سری از کتابهای عهد جدید رو بررسی میکردیم، من این احساس رو داشتم که چند نفر از عزیزترین دوستانم رو به شما معرفی میکنم. قبل از اینکه ادامه بدیم، میخوام توصیه کنم که این قسمت زیبای بیوگرافی غلاطیان رو از دست ندید. جایی که دیدگاهی از خارج جسم پولس رسول به ما میده. در این قسمت از باب 4 آیات 12 الی شانزده از نامه پولس رسول به گلاتیان اینطور طور می خونیم. ای برادران از شما تقاضا می‌کنم مثل من بشوید مگر من مثل شما نشدم من نمی‌گویم که شما به من بدی کرده اید شما میدانید، به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم و اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود مرا خار نش و از من روی گردان نشدید برعکس طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی ایسای مسیح بودم پس آن رزامندیی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن بود چشمان خود را در آورده و به من می دادید آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شده ام؟ این دیدگاه بسیار مهمی از زندگی پولس رسوله. محققین در اینکه که خار جسم پولس چی بوده با هم اتفاق نظر ندارند و نمیتونن به طور قطع مشخص کنن که این خار چی بوده. خاری که پولوس در جسمش داره ناشی از مریضی یا یک جراحته. پولس هم سنگسار شده بود و هم شلا خورده بود و این میتونست باعث مجروح شدنش بشه. میتونست نابینایی پولس در راه دمشق ضمن ملاقات با عیسی باشه هرچه چه که بوده این خار در جسم پولوس باقی مونده بود از این مت متوجه میشیم که شاید وضعیت ظاهری پولوس به شدت تحت تاثیر این خار جسمش قرار داشته او در اینجا عنوان میکنه که غلاطیان از دیدن چهره او کراهت دارند در اینجا کلمه یونانی که برای کراهت استفاده شده در واقع به معنی بالا آوردن یا قی کردن بوده دیدن چهره او خوشایند نبوده یادتون باشه که پولوس به ما میگه که غلاطیان اگه میتونستان چشمانشون رو در می آوردن و به او میدادند این نشون میده که پولس از چشمان خیلی خیلی ضعیفی که داشته رنج میبرده ضعف چشم آن هم در حد کوری برای محققین و افرادی مثل پولس رسول یک نقص بسیار بزرگه شاید به همین دلیل بوده که پولس هیچکدوم از نامه ها رو به دست خودش ننوشته البته به جز این نامه که با دست خط خودش برای غلاطیان نوشته پولس به مشکل بینایی همیشه برای نوشتن نامهاش از کاتبین استفاده میکرد در غلطیان باب 6 آیه یازده پولس میگه ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما مینویسم در پایان این قسمت سوال خیلی زیبایی وجود داره. امیدوارم که اون رو از دست ندید. من این جمله رو روی تابلوی در اتاق یک بازرگان دیدم. آیا با اظهار حقیقت دشمن شما ام؟ آخرین چیزی که خیلی از مردم در این دنیا می‌خوام بشنون حقیقته. حتی کسانی که پیش روانکاف ها میرن و پول زیادی خرج میکنند واقعا نمیخوان که حقیقت رو بشنون. روانکاف ها باید خیلی مهارت داشته باشند تا اونها را به سمت حقیقت هدایت کنن و باید ببینند آیا اونها از تمام مشکلاتشون رها میشن یا نه. آیا با اظهار حقیقت دشمن شما شده ام؟ این یک سوال عمیقه سپس در باب چهار آیه 19 دعای کوچکی از پولوس وجود داره و برای من که علاقمند به تعالیم کتاب مقدس در مورد تولد تازه هستم بسیار جالبه پولس مینویسه ای hey, فرزندان من بار دیگر در وجود خود برای شما احساس درد می کنم مانند مادری که درد زایمان او را فرا گرفته تا شکل مسیح را به خود بگیرید همه ما میدونیم که پولس در رساله کولوسیان به ایمانداران کولوسی میگه مسیح در وجود شما تنها امید پرشکوه شماست اما چطور مسیح در زندگی شما ساکن میشه ما پروتستان ها به مفهوم دریافت کردن مسیح تاکید میکنیم ما از مردم میخوایم که با دعا از مسیح بخوان که به درون قلب هاشون بیاد اما من این رو توی کتاب مقدس پیدا نکردم بلکه این تعلیم رو در کتاب مقدس دیدم که میگه مسیح مثل یک دانه در زندگی شما کاشته میشه پتروس به ما میگه که مسیح به واسطه یک ذریه فساد ناپذیر که کلام خدا هست در ما متولد میشه بر اساس نوشته های پتروس کلام خدا بذر ایمان ما رو بارور می سازه و مسیح در درون ما به دنیا میاد پولوس هم وقتی مینویسه تا مسیح در شما شکل بگیره همون چیز رو بیان میکنه مسیح در زندگی شما چگونه ساکن میشه من فکر میکنم این سوال عمیقیه براساس اساس صحبت های پتروس و پولوس مسیح در ما به دنیا میاد آیه اول از باب پنجم غلاطیان رو به خاطر دارید که میگه آری ما آزادیم زیرا مسیح ما را رهایی بخشید پس در این آزادی استوار باشید و نگذارید که بار دیگر یوغ بندگی به گردن شما گذاشته شود ما میتونیم اینو اینطور هم عنوان کنیم مسیح ما را آزاد کرده حالا مطمئن باشید که شما آزادید و اسیر و برده سنت ها و شریعت یهود نیستید. مسیح ما را آزاد کرده آزادی چیز زیبایی که پولس در نامه خودش به غلاطیان تاکید بسیاری بر اون داره آزادی پیام واقعی کتاب غلاطیانه مسیح شما را از اسارت سنتها آزاد کرده حالا شما دیگه در اسارت اونها نیستید چون مسیح شما را آزاد کرده هر جا روح خداوند باشد در آنجا آزادی هست. دوست عزیز من آیا تجربه آزادی آزادی واقعی در روح رو داشتی اون رو نباید نادیده گرفت پولس در اینجا در باب پنج از آیه 19 تا آیه 21 از کتاب غلاطیان سراحتاً به ما میگه اگه شما این کارها را انجام بدین در ملکوت آسمان سهمی ندارین. پولس اینطور با ما صحبت میکنه. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند. زنا، ناپاکی، هرزگی، پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزجوی، رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم کسانی که چنین اعمال را به جا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت اگه این چیزهایی که برای شما خوندم در زندگی شما وجود دارند پولس به شما میگه که باید از اشتیاقی که به گناهداری آزاد بشید و نیاز دارید که توسط قدرت عیسی مسیح به آزادی برسید آیه 16 این میگه مقصود من این است اگر تحت فرمان روح القدس بسروید به هیچ وجه خواهش های نفس را ارزا نخواهید کرد خب حالا اجازه بدید تا بررسی خودمون از نامه افسوسیان را شروع کنیم من معتقدم که باب به باب و آیه به آیه از این رساله کوچک پولوس بسیار عمیقه. دلیل عمق نامه پولوس به افسوسیان یک دلیل دوگانه هست اولا پولوس مدت زیادی رو در افسوس گذرونده بود او بیش از سایر جاها در افسوس بوده در بررسی کتاب اعمال رسولان یادتونه که پولس از افسوس در دومین سفر بشارتیش دیدار کرد اما در سفر سوم بشارتیش بود که در اونجا کارهای بسیار بزرگی انجام داد تمام اینها در باب 18 و 19 کتاب اعمال رسولان نوشته شده در افسوس بود که پولس در مدرسه تیرانوس شرکت میکرد و هر روز در اونجا تدریس میکرد رویایی که من از تاسیس دانشکده کوچک کتاب مقدس در سر داشتم بر طبق همون الگوی مدرسه تیرانوس بود که پولوس در اونجا تدریس میکرد. پولوس به مدت دو تا سه سال و نیم در افسوس حضور داشت و در مدرسه تیرانوس تدریس میکرد. در پانویس برخی از ترجمه ها نوشته شده که پولوس از ساعت یازده صبح تا پنج بعد از ظهر هر روز تعلیم میداده. در ارتباط با این دانشکده کوچک که پولوس در افسوس داشت، او یکی از پرسمرترین کلیساهای خودش را بنا کرد. پولوس یک موسس بزرگ کلیسا بود. در باب دوم و سوم مکاشفه جایی که در مورد هفت کلیسا نوشته شده این امکان وجود داره که کلیسای افسوس همون کلیسای مادر باشه که شش کلیسای ای که در مکاشفه عنوان شده از اون منشعب شده باشه هفت کلیسای آسیای صغیر این میتونه به این معنی باشه که خدمت پولس در زمینه تأسیس کلیسا در افسوس بسیار پرثمر بوده احتمالا پولس در مدرسه تیرانوس شبانهایی رو برای این کلیساها تعلیم میداده. کلیسایی که پولس در افسوس بنا کرد، تبدیل به مادر کلیساهای اون اطراف شد. احتمالا شما با اونها آشنا هستید. کلیسای ازمیر، پرگاموم، تیاتیرا، سارتس، فیلادلفیه و لاودیکیه. در مورد این کلیساهای منشعب شده از کلیسای افسوس که با کلیسای افسوس جمعن هفت کلیسا هستند، در مکاشف با به دو و سه خواهیم خوند. همونطور که میبینید، خدمت پولس در افسوس خیلی پر سمر بوده. شاید این نامه به افسوسیان بخش نامه ای باشه که فقط مختص به مردم لادیکیه یا افسوس نبوده بلکه متعلق به تمام این هفت کلیسا بوده از اونجایی که کولوسی در همان ناحیه جغرافیایی بوده این احتمال هست که کلیسای کولوسی هم بخشی از این گروه کلیساها بوده باشه دلیل دیگه ای که چرا این نامه خیلی عمیقه به خاطر پیام یا محتوای اون هست پیام واقعی نامه پولس به افسوسیان رو در آیه ابتدایی این نامه می‌بینی خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس می گوییم زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهرمند ساخته است پولس به ما میگه که شما تمام برکات روحانی رو دارید و نیاز دارید تا به عنوان یک شخصی که تولد تازه داره و زندگیش توسط روح کنترل میشه زندگی کنید او به ما میگه که این برکات در قلمرو آسمانی و در مسیح هست در بود آسمانی یا به عبارت دیگه در مسیح شما تمام این عطایا رو که بتونید به عنوان یک فرد روحانی زندگی کنید پیدا می کنید فقط کافیه که یاد بگیرید زندگی کردن در مسیح در جایهای آسمانی به چه معنیه افسوس و بقیه شهرها رو به عنوان مثالی از فرهنگ هلنی به زوال رومی می شناسیم در واقع این فرهنگ رو به فساد و ازمهلال بود به همین دلیل بود که قرنتس فاسد بود زمانی که پولس در افسوس بود امپراتور روم در اوج قدرت به سر می بود. افسوس و دیگر کلیساها در جایی بودند که امروزه ترکیه قرار داره اگه شما از این شهرها بازدید کنید متوجه میشید که بخش زیبایی از جهان رو بازدید کرده اید در زمان پولس این بخش از جهان امروز آسیای صغیر نامیده میشه اون موقع نیمه شرقی امپراتوری روم بود این بخشی بود که امپراتوران روم یا افراد بانفوز روم برای تعطیلات به اونجا میرفتند. اونها خانه های تابستانی در شهرهایی مثل افسوس و دیگر شهرها داشتند، چون این شهرها به طور ای زیبا بودند و آب و هوای آنها از آب و هوای روم خیلی بهتر بود. فساد و چیزهای دیگری از این قبیل به اوج خودش رسیده بود. در جایی مثل افسوس بقایای آثار باستانی وجود داره که نشون میده در اون زمان پرستش بوت ها و همینطور فساد و تمایلات شهوانی رایج بوده پولس به ایمانداران لاودیکیه و بقیه جاها از جمله افسوس می نویسه این برای شما امکان پذیره که مثل یک شخص روحانی زندگی کنید حتی اگرچه شما در جایی در امپراتوری روم زندگی می کنید که تمام جلال اونها بر گناه و آلودگی استواره در نامه افسوسیان پولس می نویسه تنها راهی که می تونید روحانی زندگی کنید اینه که در مسیح زندگی کنید. به این معنی که شما باید یاد بگیرید که چطور در بود آسمانی زندگی کنید. تجربه پولس که واقعا دریچه زندگیش رو به این قبیل حقایق باز کرد، تجربه ای بود که در لستر داشته. لستر یکی از گروه شهرهایی بود که به قلاتیه معروفه. این شهرها شهرهایی بودند که نامه پولس به قلاتیان خطاب به اونها هم نوشته شده بود. وقتی که پولس در لستر بود سنگسار شده و به حال مرگ رها شده بود خیلی از مردم فکر میکردند که او مرده و بعد قیام کرده کسانی که او را سنگسار کرده بودند فکر میکردند که او مرده اونها جسد او رو چنان که گویی جسد یک سگ مرده هست به بیرون شهر کشیدند در دوم قرنتیان باب دوازده جایی که پولس در مورد این صحبت میکنه که به آسمان سوم رو بوده شد خیلی از محققین کتاب مقدس اعتقاد دارند که پولوس وقتی در لستره به حال مرگ رها شده بود این اتفاق براش افتاده. من معتقدم وقتی که پولوس تجربه این نزدیک به مرگ داشته یک پاش در بهشت یا بود آسمانی بوده. من فکر میکنم که بعد از اون تجربه پولوس دیگه هیچ وقت پاش رو از بود آسمانی بر نداشته. او بقیه عمرش رو با یک پا در بهشت و یک پا بر روی زمین ادامه داده. او در قسمتی که در مورد خاری در جسمش صحبت می‌کنه، یعنی در دوم قرنتیان باب دوازده میگه خدا اجازه داده که این خار رو در جسمش داشته باشه تا یک پاش بر روی زمین باشه. پولس یک پا بر روی زمین در بین افراد پستی مثل قرنتیان و دیگر افراد فاسد مثل یونانیان و رومیان داشت. ولی همیشه یک پای او در آسمان بود. پولس ادعا میکنه که ما هم میتونیم اینطوری زندگی کنیم. در این جهان باشیم ولی در واقع در مسیح و در جایهای آسمانی زندگی کنیم. او به من و شما میگه که زمانی که اینجا روی زمین زندگی میکنیم واقعا میتونیم در بودهای آسمانی باشیم. میخوام شما را به چالش بکشم. آیا تا به حال شنیدید که میتوان توی جهان آلود زندگی کرد جایی که توسط ناسزاها و لطیفه های زشت محاصره شده و در میان همه این چیزها در آسمان و در بود روحانی زندگی کرد و پیشرفت نامه پولس به افسوسیان رو به دقت مطالعه کنید از روح القدس بخواهید تا بهتون نشون بده که کجا و چطور میشه چیزی رو که پولس میگه انجام داد یعنی چطور میشه در مکانهای آسمانی زندگی کرد از خدا بخواهید که به شما نشون بده که چطور میتونید این حقیقت رو در زندگی خودتون عملی کنید این چیزیه که باید بهش عمیقا فکر کنید نامه افسوسیان شاهکار پولس در زمینه ی کلیسا هست. کتاب رومیان شاهکار پولس در مورد نظریه نجات توسط فیض هست اول قرنتیان شاهکار شبانی او و دوم قرنتیان شاهکار خدمتی او و قلاتیان شاهکار آزادی از شریعت و آزادی ما در مسیح و روح القدسه اما وقتی رساله افسوسیان رو می خونید باید بدونید که شاهکار پولس در زمینه کلیسا رو می خونید تعالیم پولوس در مورد کلیسا رو میتونید تونید اصولا در باب سوم و شانزده آیه اول باب چهار رون پیدا کنید جایی که پولوس صحبتش رو با شرح وظایف کلیسا به پایان میبره. در این نامه پولس ما رو به چالش میکشه تا زمانی که در این دنیا هستیم در جایهای آسمانی در مسیح زندگی کنیم. پولس میگه ما میتونیم تمام برکات روحانی رو که برای زندگی در مسیح و برای مسیح نیاز داریم در میان همین دنیای مریض پر از گناه پیدا کنیم. یادتونه عیسی زمانی که با نیقودیموس در مورد تولد دوباره صحبت میکرد، دو دوبار پرسید چگونه؟ عیسی به نیقودیموس گفت آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمیدانی؟ یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و به آنچه دیدیم شهادت میدهیم. ولی شما شهادت ما را قبول نمیکنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمیکنید. اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد کسی هرگز به با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است خب نیکودیموس دیگه نپرسید چگونه نیکودیموس دیگه هیچی نگفت او اصلا این حرف رو نفهمیده پولس همین چیز رو در نامه خودش به افسوسیان تعلیم میده او تعلیم میده که شما همین الان میتونید در آسمان باشید آسمان جایی نیست که شما تنها بعد از مرگ به خاطر ایمان به مسیح اونطور که پولس در رساله رومیان و غلاطیان میگه به اونجا برید به قول پولس آسمان یک بوده و شما میتونید همین الان در این بود زندگی کنید کتاب مقدس در مورد داشتن زندگی ابدی صحبت میکنه چون ما در مسیح هستیم اگه شما کلمه ابدی رو متوجه بشید میدونید که کلمه ابدی یعنی چیزی که بود چیزی که هست و چیزی که خواهد بود حالا از چه نظر من و شما میتونیم این زندگی ابدی رو داشته باشید؟ اگه من بگم بله من زندگی ابدی دارم چون ایمانم بر مسیحه معنیش اینه که من همیشه زنده بودم اگه بگم بله یعنی این که من به تناسخ ایمان دارم یعنی من ایمان دارم که همیشه زنده ام هم و زندگی میکنم من قبلا زندگی کردم الان هم زندگی میکنم و در آینده هم زندگی خواهم کرد این چیزی نیست که ازش صحبت میکنیم چیزی که ما داریم میگیم اینه که ما زندگی ابدی داریم چون ما به مسیح ایمان داریم و این یعنی مسیح ابدیه مسیح آغاز نشده مسیح به پایان نمیرسه مسیح همیشه بوده هست و خواهد بود او در باغ جتسیمانی قبل از اینکه بر روی صلیب بره و بمیره دعا کرد ای پدر آرزو دارم کسانی که به من بخشیده‌ای در جایی که من هستم با من باشند تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینند آغاز مسیح از اولین کریسمس در بیت نبود. مسیح همیشه بوده. ما میتونیم این رو، ما میتونیم این رو مسیح قبل از تجسم بنامیم. مسیح در جسم زمینی سی و سه سال زندگی کرد. بعد از مردگان قیام کرد و بعد از چهل روز به آسمان صعود کرد و حالا در دست راست پدر نشسته. او در مکانهای آسمانی. اگه شما در مسیح باشید چون او ابدیه شما هم در حد و درجهی که در مسیح زندگی میکنید. ابدی هستید شما ابدی هستید چون با شخصی یکی شده اید که ابدیه مثل تاکی که شاخه داره و شاخه ها چون بر روی اون تاک هستند با اون تاک یکی شدند. از این لحاظ هست که شما زندگی ابدی دارید پولس وقتی از زندگی در مکان آسمانی یا بود آسمانی صحبت میکنه به این موضوع اشاره میکنه مانند دیگر رساله های پولس در این نامه هم شما بخش نظری و بخش عملی رو خواهید دید من معتقدم که بخش نظری در باب چهارم و شانزده آیه اولیه اون ادامه داره چون در این 16 آیه پولس به ما بعضی از حقایق عظیم رو در مورد کلیسا تعلیم میده. در باب سه او با ما در مورد سر بزرگ کلیسا صحبت میکنه که یکی از بزرگترین اسراری که تا به حال آشکار شده. سر یعنی رازی که دیر یا زود آشکار میشه. خب پولس میگه که برای او تمام ایده کلیسا مثل یک سر بزرگه. تا روز پنتیکاست چیزی در مورد کلیسا نمیدونست. کسی نمیدونست که خدا پیش از آغاز زمان نقشش این بوده که روزی یهودیان و غیر یهودیان و تمام مردم میتونند از طریق مسیح و از طریق روح القدس یکی بشن و با هم در کلیسا جمع بشن. در باب سوم او به ما میگه که کلیسا سر عظیم خداست. خدا نقشه کلیسا رو قبل از اینکه جهان به وجود بیاد داشت. اما نقشه خودش در مورد کلیسا رو در زمان پولس و من و شما آشکار کرد. در شانزده آیه اول از باب چهار روم، پولس با ما در مورد طبیعت، ماهیت، وظایف و احتاف کلیسا صحبت میکنه. شانزده آیه اول از باب چهار روم، آلی بیانیه ای رو که در کل کتاب مقدس در مورد طبیعت، وظایف و اهداف کلیسا نوشته شده ارائه میده. شانزده های اول از باب چهارم افسوسیان به ما میگه کلیسا تراهی شده که چطور انجام وظیفه کنه کلیسا مثل بدنیه که مسیح سر اونه به اراده او همه اعضای مختلف بدن به وسیله مفاصلی که برای آنها فراهم شده مربوط و پیوند میشوند پس وقتی هر یک از اعضای بدن به طور جداگانه مرتب کار کند تمام بدن رشد میکند و خود را در محبت بنا میکند ملاحظه میکنید من و شما اعضای بدن او هستیم. خدا یک نقشه مخصوص برای شما داره، برای شما کاری در کلیساش داره. این آیات به ما اصولی رو میده که باید در کلیساهای خودمون به کار بگیریم. وقتی که شما نامه پولس به افسوسیان رو مطالعه می‌کنید، به دنبال نقشه روحانی کلیسا باشید. به علاوه تعالیم الهامی پولس در مورد طبیعت و وظایف کلیسا، وقتی که به مطالعه افسوسیان مشغولید، به دنبال موضوع جایهای آسمانی هم باشید پولس در یک کتاب کوچک شش بابی پنج بار به جایهای آسمانی یا بود آسمانی تاکید میکنه ضمن مرور رساله اپسوسیان از پنج جایی که پولس به مکانهای آسمانی اشاره کرده داشت بردارید بعد اگر میتونید چیزی رو که پولس در مورد جایهای آسمانی در نامه کوتاهش میگه خلاصه کنید نامه پولس به اپسوسیان و کتاب یوشا در عتیق زمینه های مشترک زیادی دارند من مطمئنم شما محققین عهد قدیم که اون رو با من بررسی کردید یوشه رو به خاطر دارید یوشا باب یک آیه 3 آیه کلیدی کتاب یوشع و باب یک آیه سه از کتاب افسوسیان هم آیه کلیدی کتاب افسوسیانه این آیات کلیدی نشون میدن که چطور این کتابها با هم مرتبط هستند همونطور که شما کتاب مقدس رو میخونید متوجه میشید که در عهد شما تعلیمی دارید که زمانی در عهد قدیم تصویری از اون تعلیم رو داشتید. عهد جدید آموزه هایی را به شما تعلیم میده و عهد قدیم تصویری از اون آموزه‌ها هست. افسوسیان و یوشه نمونه خوبی از این اصل تفسیر کتاب مقدسیه. در افسوسیان پولس میگه که گوش کنید در مسیح در بُعد آسمانی شما تمام برکات روحانی رو دارید. تمام پویایی روحانی که به عنوان یک فرد دوباره تولد یافته نیاز دارید شما پیرو مسیح هستید که توسط روح کنترل میشه حالا نکته این نامه باید این باشه بیایید و در مسیح در جایهای آسمانی ساکن بشید و در مسیح در بود آسمانی تمام منابعی رو که یک شخص روحانی نیاز داره به دست بیارید ما های روحانی زیادی داریم. ما برکات روحانی دعا رو داریم. آیا شما دعا می کنی؟ ما کلام خدا رو داریم که مثل یک معجزه بزرگه. آیا واقعا زمانی رو صرف کلام خدا می کنی؟ ما رابطه سمیمانه با مسیح قیام کرده داریم و این واقعیت که می تونیم توسط او و با عطایای روحانی تقویت بشیم. تمام این برکات روحانی در جایهای آسمانی منتظر ما هستند آیا این ایمان رو داریم که بیاییم و در جایهای آسمانی در مسیح ساکن بشیم و دارایی های روحانیمون رو تصرف کنیم یک بار داستانی از خواده شنیدم که به آسمان رفت تا اونجا با خداوند باشه. اولین کاری که پتروس قددیس کردیم بود که اون شخص رو به گردشی در آسمان برد. همونطور که با هم قدم میزدند، خادم پرسید اون جعبه هایی که اون طرف هستند چی هستن؟ پتروس قدیس گفت یادته که سالها قبل تو برای کلیسا، بنیمکد نیاز داشتی ما تمام اینها رو برای تو آماده کردیم و تو دیگه این رو درخواست نکردی بعد اونها جعبه خیلی بزرگی دیدند و خادم از او پرسید اون چیه پتروس قدیس گفت یادته که تو نیاز به آلات موسیقی داشتی و ما اونا رو بسته بندی کردیم و آماده بود که برات بفرستیم ولی تو اونا رو هم درخواست نکردی این گردش آسمانی همینطور با پتروس قدیس ادامه داشت و او به خادم تمام برکاتی رو که براش آماده کرده بودن نشون میداد چیزایی که اونها رو درخواست نکرده بود البته این فقط یک داستانه اما حقایق مهمی رو به ما یادآوری میکنه که ما اینجا در اپسوسیان اونها رو میبینیم در رساله یعقوب ما جمله ای داریم شما آن چرا که میخواهید ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید حالا یادتونه که پیام کتاب یوشع این بود هر جایی که کف پای شما بر آن گذارده شود از آن شما خواهد بود قلم روتان از طرف جنوب تا بیابان از طرف شمال تا لبنان از طرف شرق تا رودخانه فرات و از طرف غرب تا دریای مدیترانه وسعت خواهد داشت به عبارت دیگه به اونها سرزمین کنعان وعده داده شده بود اما اونها تا زمانی که پاشون به اونجا نمیرسید نمیتونستند کل سرزمین کنعان رو به دست بیارن پیام کتاب یوشه اینه به اونجا برید و اون سرزمین رو به دست بیارید خدا اون رو به شما داده اما شما باید به اونجا قدم بذارید قسمت عملی این حرف اینه تا زمانی که شما به کنان نرسید واقعا نمیتونید اون رو به دست بیارید و چیزی رو که قراره بگیرید به دست بیارید این پیام کتاب یوشاه. این دقیقا همون پیامیه که ما در اون رو میبینیم اما کنان باستاب برکات روحانی در جایهای آسمانیه شما برکات روحانی بزرگی دارید و چون باید این برکات روحانی و دارایی‌های روحانی رو که به شما وعده داده شده به تا به دست بیارید پس به مکان‌های آسمانی برید. پیام این کتاب اینه شما باید دارایی‌های روحانی رو با ساکن شدن در مسیح جایی که این برکات روحانی در اونجا هست به دست بیارید. ما این کار رو با ایمان و زندگی در اطاعت از تعالیم عیسی میتونیم انجام بدیم. موضوع دیگه ای هم در کتاب افسوسیان وجود داره از اونجایی که پولس زمان زیادی رو در افسوس گذرونده یعنی سه سال و نیم کلمه‌ی کلیدی در سباب اول به خاطر داشته باشید هست پولس در مدرسه تیرانوس تدریس می کرد. او یک دانشکده کوچک کتاب مقدس در اونجا داشت و به خیلی از افراد تعلیم میداد. پس در سباب اول پولس به افسوسیانی که تعلیم داده بود میگه به خاطر داشته باشید به خاطر داشته باشید به خاطر داشته باشید چون اونها از قبل تمام حقایقی رو که او در نامش گفته بود میدونستند یعنی این تجربه زیبای داشتن زندگی ابدی رو چون شما در کسی هستید که ابدیه یافتن تمام برکات روحانی مورد نیاز برای زندگی که خدا شما رو به اون فرا خونده در مسیح و در بعد آسمانی چیزی که پولس در افسوسیان تعلیم میده و به این دلیل به اونها میگه به خاطر داشته باشید به خاطر داشته باشی وقتی که پولس باب به چهار روم رو می ویسه، اونجا وارد قسمت عملی نامهش میشه. او میگه قدم بردارید، قدم بردارید، او میگه شما نیاز دارید تا لباس روحانی بپوشید. نیاز دارید تا لباس ژنده زندگی قدیمی رو از تنتون در بیارید و جامعه زندگی جدید رو بپوشید و بعد قدم بردارید. پولس با اونها میگه بنابراین من که به خاطر خداوند زندانی هستم از شما تقاضا میکنم زندگی شما شایسته مقامی باشد که به با آن خوانده شده اید همیشه فروتن ملایم و بردبار باشید و با محبت یکدیگر را تحمل کنید قدم برداشتن با احتیاط یعنی اینکه مثل گربه‌ای قدم بردارید که روی حسار راه میره و یک سگ هم در هر طرف حسار راه میره اون گربه وقتی که قدم بر می داره به اطرافش نگاه میکنه و با دقت به سگ نگاه میکنه و میدونه چه جای قدم میذاره و کجا میره. پولوس به ما میگه که چشمان روحانی ما باید باز باشه و سرهای ما باید به سوی بالا باشه. ما باید قدم برداریم، به اطراف نگاه کنیم، گوش به زنگ باشیم و بدونیم که کجا میخواییم بریم. قدم برداشتن کلمه کلیدی قسمت عملی نامه پولسه. اینها چیزهایی هستند که وقتی نامه پولوس به افسوسیان رو میخونید، اونها رو باید پیدا کنید. دانشویان عزیز، اگر این هنوز به نظر شما مثل یک راز هست، پس دوباره و دوباره کتاب افسوسیان رو بخونید و در آن تعمل کنید و از خداوند بخواهید که چشمان روحانی شما رو باز کنه تا بتونید این درس قدرتمند رو درک کنید تا اینکه زندگی در جایهای آسمانی رو یاد بگیرید و هر روزه در آن زندگی کنید. عزیزان اگه امروز احساس میکنید خدا از شما دوره و غیر قابل دسترسیه به یاد داشته باشید که اگه به اون نزدیک بشید اون هم به شما نزدیک میشه باد آسمانی چندان هم دور نیست با تو کلام خدا ما میتونیم که از همینجا به اون برسیم و در پیروزی که خدا برای ما مهیا ساخته زندگی کنیم حالا از خدا میخوام که به شما تحمل بده و تشویق کنه و شما رو در آرامش خودش حفظ کنه و با اسبشه که فیض و محبت خدا رو با همه در میون بذارید